في هذه الصاعة في كل صاعة أليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلة السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوبة بإناية إمام زمان عليه السلام وارد بحث نقد عدله عقلیه وحدت شخصیه وجود شدیم ارز کردیم که بسیاری عدله عقلیه وحدت شخصیه وجود رو متفرع بر پذیرش اصالة الوجود میدانند و از طرف یکی از تقاریر وحدت وجود که تقریر رائجی هست و طرفداران زیادی از میان حوضویان دارد اون بحث وحدت تشکیکیه وجود هست که این هم متفرعه بر اصالت الوجود هست لذا به بیان مدعای اصالت الوجود پرداختیم و نقد اون رو هم بیان کردیم الحمدلله و روشن شد که این معنایی رو که از اصالت الوجود اراده کردند اساسی ندارد لذا اونهایی که قائلند عدل عقلیه وحدت شخصی وجود و تفرع بر اصالت الوجود هست با نقد اصالت الوجود آن عدل عقلیه هم خود به خود باطل می شود و نقد وحدت تشکیکی وجود هم معلوم شد اما به هر حال ما وارد بعضی از عدل عقلیه دیگری که بالخصوص برای وحدت شخصی وجود آورده شده انشاءالله وارد اون ادله خواهیم شد عدله اقلی مختلفی برای وحدت شخصیه وجود آورده شده که بعضیا حتی بیشتر از ده دلیل بالاتر از ده دلیل برای وحدت شخصی وجود دلیل آوردند اما خب از طرفی به علت محدودیت بحث و از طرف دیگر چون این ادله بسیار ادله بسیاری از این ادله عمده این ادله ادله ساده و بسیتی هستند که به نقد اونها میسر است و خیلی مشکل چندانی در نقد اونها وجود ندارد لذا ما از طرح عمده این ادله خودداری میکنیم و به بیان دو دلیل مهمی که بسیاری از قائلین به بحث وقت شخصی وجود به این دو دلیل تکیه کرده اند و بسیار روی این دو دلیل اعتماد دارند و این دو دلیل است که صدرای شیرازی هم در کتب خودش این دو دلیل را آورده لذا ما به طرح این دو دلیل که عمد دلیل اونها هست اکتفا میکنیم و نقد عدلهٔ دیگر رو به خود عزیزان واگذار میکنیم مهمترین دلیلی رو که قائلین به بحث وحدت شخصی وجود به عنوان دلیل عقلی برای این نظریه کرده کردهاند اون دلیل نامتناهی بودن خداوند متعاله این دلیل به اندازه مهم هست که بسیاری از کسانی که وحث وحدت شخصی وجود رو پذیرفتند به خاطر این دلیل این بحث رو پذیرفتند و به خاطر عدم توان پاسخگویی به این دلیل بر سر نظریه وحث وحدت شخصی وجود زانو زدند و این نظریه رو پذیرفتند لذا می توانیم مهمترین دلیل عقلی وحدت شخصی وجود رو این دلیل نامتناهی بودن خداوند متعال بیان بکنیم در تقریر این دلیل ارز میکنیم که خداوند متعال به لحاظ وجود نامتناهی است چون وجود خداوند متعال وجود بسیطه هیچ نحوه ترکبی در ذات الهی موجود نیست خداوند متعال هیچ حدی نداره و لازمه این که خداوند متعال هیچ حدی ندارد این است که وجود اون در همه امکنه در همه ازمنه در هر جایی که تصور وجود رو بشود کرد وجود خداوند متعال رو ساری بدانیم و کل وجود رو وجود خداوند متعال بدانیم چرا چون اگر بخواهیم غیری رو برای خداوند متعال فرض بکنیم خود این غیر سبب حد زدن این وجود بسید خواهد شد این وجود رو فرض بکنیم که آمده فراگیر شده اما به سر این غیر که میرسد خب یک وجود دیگری در فرض موجود هست به سر این غیر که میرسد باید حدودی رو برای خداوند متعال قائل شویم که این حدود سبب تمایز ذات الهی از این غیر شود و ذات الهی رو از این غیر جدا بکنه لذا اگر بخواهیم فرض بکنیم شما فرض بکنید یک تخته رو که تمام این تخته فراگیر شده یک وجودی یک گچی رو به عنوان مثال در کل این تخته شما می یک وجود سریاندار یک وجود ساری که تمام این محدوده تخته رو فرا گرفته اگر بخواهیم غیر از این وجود چیز دیگری رو فرض بکنیم همانند یک دایره‌ای رو که ما از این گچی که تمام تخت رو فرا گرفته این رنگی که تمام تخت رو فرا گرفته باید خارج بکنیم یعنی وجود این گچ این وجود ساری در تمام این تخته آمده آمده همه جا رو فرا گرفته به محدوده این وجود که رسیده یک حدی براش ایجاد شده و این غیر از اون خارج شده خب بیان میکنن که اگر بخواهد غیری وجود داشته باشد این غیر لازمه بودن این غیر حد زدن خداوند متعال است. و اگر این وجود حد بخورد حد مستلزم ترکب است. چرا؟ چون حد داشتن اینی که محدود باشد به اموری مستلزم این است که اون وجود زی اجزاء باشد تا اون محدوده بیاید و غیر از اون رو فراتر نرود خود اون حدود جزء اجزاء این وجود هستند حد هست و حد هست لذا خود حد داشتن مستلزم ترکب ذات الهی است که ذاتی است که از اون متن وجود و از اون حدود تشکیل یافته است و اگر بخواهد کسی قائل شود که ذات الهی ذاتی مرکب است علاوه بر این که خب این طبعا از بساطت ذات الهی دست برداشته در حالی که فرض بحث ما این است که ذات الهی بسیط است خود این توالی فاسده زیادی رو داره از جمله اینکه مستلزم یک نقص بزرگی در ذات الهی است چرا چون اگر وجودی محدود بود که ارز کردیم که لازمه محدودیت زی اجزا بودن است خب این وجود مرکب است زی اجزا است و هر وجود زی اجزایی افتقار دارد به اجزای خودش نیاز دارد به اجزای خودش برای اینکه بخواهد باشد برای اینکه موجودیت پیدا بکند باید اجزای اون باشد نیاز دارد به اجزای خودش و وجودش هم فرع بر وجود اجزای خودش هست و وجود اجزا مقدم به حسب رتبی در بعضی از فروز و به حسب زمانی در بعضی از فروز دیگر بر اون وجود زی اجزا هست لذا این مستلزم نقص در ذات الهی هست و این خلف واجب الوجود بودن خداوند متعال هست و این خلف خداییت خداوند متعال خواهد بود لذا نمی توانیم از بساطت ذات الهی ما دست برداریم و باید بگوییم که خداوند متعال بسیط است پس وقتی که خداوند متعال بسیط شد به همین تعبیری که عرض کردیم نباید در هیچ جایی توقفی براش حاصل شود هیچ محدودیتی به حسب وجودی نباید برای اون ایجاد شود لذا این وجودی که بسیط است و هیچ حدی ندارد و به تعبیر ساده‌تر این وجودی که نامتناهی است طبعا جایی برای غیر باقی نمیگذارد چرا چون وجود غیر مساویس با تناهی این وجود مصاویست با حدار حد شدن این وجود لذا وجود نامتناهی جایی برای غیر نمیگذارد وجود بسیط جایی برای غیر نمیگذارد لذا تعبیر می‌کنند از این مطلب تحت عنوان قائدهی به این عنوان به این عبارات که بسیط الحقیقه کل الاشیاء اگر چیزی شد که حقیقت چیزی بود که حقیقتش بسیط بود یک بسیط حقیقی بود این لازمش اینه که کل اشیاء همین وجود باشد. کل اشیاء رو فرا بگیرد. غیری برای این بسیط وجود نداشته باشد و هر چیزی رو که ما تصور بکنیم از کسرات از اشیاء دیگر در حقیقت همین وجود بسیط باشد خب اگر خداوند متعال وجود بسیط شد و بسیط الحقیقه کل الاشیاء شد پس همه عالم همون وجود خداوند متعال است و همه عالم و همه کسراتی که ما میپنداریم اینها وجود منحازی از خداوند متعال ندارند و وجودشون همون وجود خداوند متعال است زیرا که اگر بخواهند غیریتی حقیق قطعا داشته باشند لازمش حد پیدا کردن خداوند متعال عدم نامتناهی بودن خداوند متعال که یعنی خداوند متعال تناهی دارد و متناهی بودن خداوند متعاله لازمش نقص در ذات الهیست لازمش خلف واجب الوجود بودن خداوند متعاله لذا وقتی که اینها لوازم فاسده عدم بساطت هست پس باید ما مستلزم بساطت شویم و بساطت هم لازمش فراگیر شدن در کل هستی در کل اشیا و کل عالم است و بلکه کل عالم همین وجود است که این همون مفاده وحثت شخصیه وجود خواهد بود در نقد این دلیل ما عرض میکنیم که بساطت ذات الهی منافاتی با وجود غیر ندارد و موجب حددار شدن آن وجود بسیط نخواهد شد اگر غیری باشد این وجود غیر موجب حددار شدن آن وجود بسیط نخواهد شد و اون چیزی که حقیقتاً سبب حد دار شدن وجود بسیط می شود و به تعبیر دیگر وجود غیر کجا سبب حد دار شدن وجود بسیط می شود فقط در ظرف مکان وجود غیر سبب حد دار شدن اون وجود بسیط می شود و ما اگر اون وجود مجرد رو از مکان تجرید کردیم اون رو بدون مکان تصور کردیم که البته تصور این خودش تصور راحتی نیست و ذهن متعالی رو میطلبد که انسان یک حقیقتی رو در این ذهنی که مشروب به تعینات مکانی و زمانی هست بتواند چیزی رو بدون مکان این را تعقل کند و تصور کند و این همون ذهن عالی است که تعالیم الهی و فرمایشات وجودات نازنین اهل بیت میخواهند انسان را به این درجه. تعالی ببخشنده خب تصور این تصور مشکلی است در بدال الامر اما اگر بتوانیم نورود بسیط رو مجرد از مکان بکنیم این بودن بسیط و بودن غیر رو در ظرف مکان نگاه نکنیم هیچ منافاتی ایجاد نمی شود بین بودن این بسیط و بودن این غیر و این غیر میتواند باشد و اون بسیط هم به بساطت خودش میتواند باشد اما در ظرف مکان اون موجود بسیط رو نباید ما ببینیم به تعبیر ساده تر اینها نامتناهی بودن خداوند متعال رو نامتناهی در ظرف مکان فرض اند نامتناهی مکانی فرض گرفتند این بسیط رو اونها در تصویر ذهنی وقتی میخوان این رو درک بکنن یک تصویری رو در ذهن خودشون میارند ناخداگاه این بسیط رو در یک ظرف در یک فضایی فرض میکنن بعد به همون شکلی که عرض کردم دیدن که خب این بسیط که بخواهد در اون فضا فراگیر باشد اگر بخواهد غیر هم باشد خب اینها وجودشون با هم دیگه می کند تصادم می کند، با هم برخورد میکنه و همینطور گفتیم باید یک ای رو ما از درون این وجود بسیط خارج بکنیم که لازمه اون وجود حد و حدود در اون ذات بسیط هست لذا اینها ناخداگاه این رو این بسیط رو در فرض مکان در ظرف مکان اون رو در نظر گرفتهاند اما ما وقتی که این بسیط رو بدون مکان تعقل بکنیم وقتی که مکان رو از اون تجرید کردیم دیگه در حقیقت اصلا جایی نخواهد بود که بگوییم در اونجا یا باید این غیر باشد یا باید اون ورود بسیط باشد دیگه اصلا جایی نداریم که ما بخواهیم تزاهم در جا رو طرح بکنیم و این وجود بسیط اصلاً موتن دیگر نخواهد داشت که تعبیر شود که موتن وجود بسیط و موتن وجود غیر اینها با هم دیگر تصادم میکنند با هم دیگر تزاهم میکنند و اگر بخواهد غیر باشد لازمه اش اون ترکب و اون حددار شدن اون وجود بسیر در موتن خودش هست لذا این تعبیر موتن رو هم که آورده خود موتن اصلا اسم مکان هست لذا اصلا در اینجا جا دیگر وجود ندارد دیگر در اینجا موتن وجود ندارد که بخواهد تصادم باشد و اصلا تزاهم این چنینی تزاهمی که غیر با بساطت میتواند پیدا بکند فقط این تضاهم در ظرف مکانه در غیر ظرف مکان هیچ تصویری ندارد که این غیر بخواهد با اون بسیط تضاهم بکنه اگرچه که به اینها وقتی که ممکن است این رو طرح بکنید که شما حقیقتاً این بسیط رو در ظرف مکان شما فرض گرفتید یک فضایی یک مکان و مای رو برای این در نظر گرفتید ممکنه که این رو انکار بکنن اما وقتی که نظر دقیق تری داشته باشن ببینن که اصلا بدون فرض مکان هیچ تبیینی برای این وجود ندارد و اینکه بسیط الحقیقه کل الاشیاء اصلا بدون فرض مکان نمیشود این رو تبیین کرد و سوال میپرسیم که شما این رو تجرید بکنید از مکان چه دلیلی وجود دارد که بسیط الحقیقه کل الاشیاء هیچ وجود ندارد؟ دارد. هیچ دلیلی اصلا وجود ندارد لذا با تجریده از مکان اصلا قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و اینکه وجود نامتناهی جایی برای غیر نمیگذارد یک قاعده بیدلیل و بلکه باطل است و حتی اگر ما بخواهیم این قاعده رو این که نامتناهی بودن و بسیط الحقیقه نامتناهی, نامتناهی که از بساطت ذات ناشی می شود بسیط الحقیقه کلو الاشیاء رو حتی اگر ما بخواهیم در فرض مکان هم این را تصور بکنیم که از کردیم بدون فرض مکان که اصلا تصویر ندارد دلیل ندارد باطل است و با فرض مکان در حقیقت می توانیم بگوییم اصلا بسیط وجود ندارد یعنی در فرض مکان ما میتوانیم یک وجود زی اجزای مرکب رو فرض بکنیم که با اینکه که مرکب است اما توقفی در مکان ندارد همه امکنه رو پر کرده است همه جاها رو پر کرده است جایی برای قیر نزوشتاش. می میتوانیم بله یک وجود زی اجزاء و مرکب رو در جا در مکان در فضا ما این رو در نظر بگیریم که این همه اجزا رو گرفته اما در حقیقت این دیگر بساطتی ندارد چرا؟ چون بودن در مکان لازمش این است که هر جزئی از مکان در مقابل جزئی از اون وجود نامتناهی قرار بگیرد خود مکان زی اجزاز و تمکان در مکان متفرع زی جز بودن است متفرع اجزاد داشتن است و باید هر مقداری و هر قسمتی از این وجود در مقابل این مکان قرار بگیرد لذا میشود فرض کرد که یک نامتناهی که حقیقتاً به نهوه بی جزء جز دارد اما خب بله در مکان و در فضای مادی این توقفی ندارد میشود این رو فرض کرد اما دیگر این نامتناهی رو ما نمی توانیم بسیط بنامیم به همین دلیلی که عرض کردیم و اگر بخواهیم خداوند متعال رو اینطوری این گونه این رو منطبق بر مکان بنامیم و خداوند متعال رو سالی در همه امکنه بدانیم وجود همه موجودات مکانمند رو وجود خداوند متعال بنامیم بلکه خود مکان رو خداوند متعال بنامیم خب این در حقیقت دیگر وجود بسیتی در اینجا مفروض نیست و بساطتی وجود ندارد کما اینکه در لوازم فاسده مفاد بحث وحدت شخصی وجود هم ذکر کردیم که اصلا خود این مفاد لازمه اش ترکب ذات الهی است لذا این قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء اینکه نامتناهی بودن جایی برای غیر نمیگذارد این در فرض عدم مکان و عدم فضا اصلا دلیلی ندارد تصویری ندارد و قاعده باطلی کلام بی دلیلی و در فرض مکان اصلا بسیتی وجود ندارد بله نامتناهی وجود دارد اما این نامتناهی است که از بساطت زاد نشعت نگرفته است نامتناهی شیء مرکب است لذا خداوند متعال که خوب وجود بسیتی دارد و وجود مرکبی نیست و ترکب شد که با واجب الوجود بودن خداوند متعال نمیسازد و خلف ازلی بودن خداوند متعال هست لذا خداوند متعال در مکان نیست و عدم تناهی در مکان ندارد و نامتناهی مکانی نیست و اصلا خود او خالق مکان است لذا قرب و بعد مکانی هم در ذات الهی معنا ندارد نمیتوانیم بگوییم که خداوند متعال به شی مثلا قریب است به نحو مکانی از فلان شی بعید است به نحو مکانی قرب و بعد مکانی هم در اینجا معنا ندارد و روایات متعددی داریم که انشاءالله به انایت آقا امام زمان علیه السلام انشاءالله به اون روایات اشاره خواهد شد که روایات متعددی داریم که نفی مکان از خداوند متعال می کند وقتی سؤال شده که آیا خداوند متعال در همه امکنه هست وجودات نازنین فرمودن که خداوند متعال اصلا مکان ندارد فرض مکان در خداوند متعال فرض است و باید خداوند متعال رو بلا مکان بلا عین خداوند متعال رو در نظر گرفت که انشاءالله به این روایات در بحث ادله نقلی انشاءالله اشاره خواهد شد پس بسیط بودن ذات الهی با وجود اغیار منافاتی ندارد و اینطور نیست که چون خداوند متعال بسیط است و مرکب نیست بگوییم که غیر از خدا چیزی وجود ندارد و عالم همه وجود خداوند متعال است اون چیزی که برای غیریت مهم است اون چیزی که برای دعیت مهم است اون وجود ما به الامتیازه بله ما قبول داریم برای این که غیری فرض شود وجود غیر متفرع بر وجود مابه الامتیاز است دعیت و چندتا بودن متفرع بر وجود مابه الامتیاز است اما خب وجود مابه الامتیاز در ذات الهی هیچ ضرری نمیزند خداوند متعال مابه الامتیاز دارد نسبت به سایر مخلوقات این عالم نسبت به ما سوای خودش مابه الامتیاز دارد اما این مابه الامتیاز خداوند متعال زردی به بساطت ذات نمیزند و اصلا خود همین بساطت مابه الامتیاز است و وجوداتی داریم ما وجودات مخلوقات. مخلوقاتی داریم ما عالم رو داریم که اینها بساطت ندارند، بساطت به نهوه لا مکانی به نحو ذات الهی ندارند و خداوند متعال بساطتی منهاز از وجود این عالم دارد از وجود مرکبات دارد لذا خود همین بساطت ذات اینی که یک وجود بسیط از و بقیه مرکب خود همین مابه الامتیاز هستش و کفایت میکند برای وجود غیر و برای دعیت و وجود تكسرات و حتی بنابر اسالت الوجود این مابه امتیازی که ما بیان کردیم در واقع برگشتش به همون مابه اشتراکه و خود مابهل امتیاز اینطور نیست که این مابهل امتیازی که ما بیان کردیم سبب وجود یک مابهل امتیازی منحاز از مابهل اشتراک بشه که بیان اون وقت این تالیه فاسد لازم بیاد که خب وجود الهی مرکب از ما به الامتیاز و ما به الاشتراک شد نه همونطور که در اصالت الوجود بیان شد همونطور که در تشکیک در وجود بیان شد می توانیم ما ما به الامتیاز رو به خود ما به اشتراک برگردانیم که در این ما به امتیازی که ما بی بیان کردیم که همان به ذات است در واقع این ما به امتیاز چیزی جدای از اون حقیقت نیست چیزی جدای از اون ما به اشتراک که خود وجود هست نیست در واقع این یک وجود نامتناهی و بقیه وجودهای متناهی این در واقع یک وجود شدید است و بقیه وجودهای ضعیف لذا بنابر فرض اصالت الوجود و پذیرش اصالت الوجود هم هیچ مانعی ندارد و در واقع برگشت ما به الامتیاز به همون ما به است و سبب ترکب نمی شود و زرر به بساطت هم نمی زند و بنابر عدم صحت اصالت الوجود که ما این رو ثابت کردیم که اصلا دیگر موجودی که به تمام ذات متباین است با موجودات دیگر تمامش مابه است است، اصلا مابهل اشتراکی در حقیقت وجود ندارد که این وجود بخواهد متشکل از مابه و مابه اشتراک شود. نظام وجودی که متباین به تمام ذات هست از وجودات دیگر، خود این تباینه به تمام ذات که تمامش مابه امتیاز هست، باز ضرری به بساطت ذات الهی نمیزند، پس، خداوند متعال در عین اینکه بسیط است و مرکب نیست مابه الامتیاز نسبت به سایر موجودات دارد و این مابه الامتیاز سبب دوییت و غیریت هست و ضرر به بساطت ذات او هم نمیزند و اگر کسی بخواهد از این وجود مابه الامتیاز تعبیر به حد بکند بگوید ما اسم این را میگذاریم می حد و این وجود ما به الامتیاز و این کشف ما به الامتیاز در ذات الهی نسبت به ما سوای ذات الهی رو تعبیر میکنیم به حد گذاشتن برای خداوند متعال خب ما عرض میکنیم که ما دعوای سر اسم نداریم هر جور که میخواهید تعبیر بکنید اما این جور حد داشتن خداوند متعال هیچ ضرری به بساطت ذات الهی نمیزند هیچ مانعی برای اون ذات اقدس الهی ایجاد نمی کند بلکه اگر غیر این باشد ما به موانع زیادی دچار خواهیم شد مطلب دیگری رو که لازم است ما بگوییم این است که ما ذات الهی رو می توانیم نامتناهی در کمالات بنامیم به این معنا که خداوند متعال واجد همه کمالات هست و ذات الهی همه کمالات رو دارد و هیچ نقصی و ضعفی در اون وجود نداره و این به این معنا نیست که چون هر وجودی نسبت به حالت پایینتر خودش کمال حساب می شود خب پس بگوییم خداوند متعال هم که نامتناهی در کمالات هست همه کمالات رو هم هست این وجود خاص نسبت به حالت پایینتر خودش که از پایینترین مرتبه وجود حساب بکنیم که قبلش مثلا عدم هست و مراتب دیگر که هر کدام نسبت به مرتبه پایین اینها اون مرتبه بالاتر کمال حساب می شود بگوییم که خداوند متعال چون فاجد همه کمالات هست پس باید اون موجود رو هم که نسبت به حالت پایین تر خودش کمال هست اون موجود رو هم داشته باشه و آن موجود وجودش همون وجود خداوند متعال است نه اینی که میگویم خداوند متعال نامتناهی در کمالات هست به این معنا نیست بلکه همانطور که هر موجودی نسبت به حالت بالاتر خودش نقص دارد همه عالم نسبت به اون ذات لایتناهای در کمال سراسر نقص است. و ذات اون کمال مطلق است و کمالهای نسبی که از جهتی اینها کمال هستند اما از جهت دیگر اینها نقص هستند در ذات الهی راه ندارد و وجود اون کمال مطلق است و واجد همه کمالات هست لذا این معنا از نامتناهی بودن خداوند متعال این معنا از بینهایت بودن خداوند متعال در کمالات باز منافاتی با بساطت ذات الهی و همچنین منافاتی با وجود اغیار برای ذات الهی و غیریت عالم از خداوند متعال و جدا بودن عالم از خداوند متعال ندارد بنابراین این دلیل که مهمترین دلیل اغلی وحدت شخصی وجود بود و عرض شد بسیاری رو به زانو درآورده این دلیل دلیلی است بی اساس و ناشی از عدم تعقل دقیق بساطت ذات الهی عدم تصور دقیق بساطت ذات الهی و دلیلی است که هیچ اساس و پایه ندارد و با مقداری تعقل و مقدار بهره گیری از تعالیم اهل بیت اسمت و طهارت این مسئله کاملا معلوم هست و این دلیل هم براحتی قابل جواب هست و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته